خب بسم الله الرحمن الرحيم اسناد الافعال الصحيحة والمؤتلة إلى الزمائر البارزة اسناد كردن افعال صحيح ومؤتل بزمائر بارزة. اين درشندين درسینو آباده میخاد نکاتی رو به ما بیاموزه. درین درس اولش اسناد الصالمي والمهموز والمثال إلى الزمائر. خب دقیق بفرمایید اسناد کردن فعل صالم مهموز ومثال بزمیره. زمانی که ما سالم و محموز و مثال و به زمیر اسناد کنیم هیچ تغییری در اینا رخ نمیده ببینید سمعتو النداء سمعنا النداء التفلانی سمعا النداء الاطفالو سمعو النداء البناتو سمعنا النداء. سه قسم از امسل رو آورده قسم اول برای سالم قسم بعدی برای محموز و قسم بعدی برای مثال این قسمی که ما خوندیم برای سالم بود سمع تو سمیا نہ سمیا اس سمی او سمیا نہ کندل زبیرو فعل و اسناد کرده بود آیا تغییری در اینام بده بود حذفی رخ بده یا تغییر دیگه‌ای رخ نداده بود حالا در امثله گروه بعدی دقت بفرمایید قسم بعدی امر تو بالمعروفی امر نہ بالمعروفی از زائرانی سعی ما الانتظار الزائرون سئموا الانتظار العاملات بدأن العمل أمرت أمرنا این محموز الفا هست یعنی هر فعل در ابتداش اومده میبینیم تغییری درش رخ نداده در سئموا که همزه در وسط اومده باز هم میبینیم تغییری رخ نداده سئموا بدأن یعنی این امرت به سر نصرتوی هیچ تغییری درش رخ نداده حالا بیایید در امر تو، امر نا، سیما، و بدعنه، در اولی تو، در بعدی نا، در بعدی الف، در بعدی واو در بعدی نون، زمیر بارز بودند. به هر زمیری که اینا اسناد داده شده بودند، هیچ تغییری رخ نداده بود. در حالی که در درسای بعدی، ما این تغییر رو به راحتی حس خاهم كان حالا أمسله بعديرو دي قد بفروعيت قسم بعدي وعدتو بفعل الخيري وعدنا بفعل الخيري البنتاني وعدتا بفعل الخير الاغنياؤو وعدوا الغنياتو وعدنا وعدتو وعدنا وعدتا وعدوا وعدنا كمسند مدفيل بزميراء مختلفة زميراء بارزة مختلفة هش تغيير روح نداد حالا بياد روي قايدة همين درس إذا اصل در صالم والمثال إلى ضمائر الرفع البارزة لم يحدث هذا الاسناد فيها تغييرا زماني كي اسناد داده دا بشي صالم محموز ومثال بالزمائر الرفع بارز ايجاد نمي کنه اين اسناد هشت تغيير اين اسناد هشت تغييري ايجاد نمي كولي. برخلاف مثلا مضاعف شما ببینید مده اگر شما مده رو اسناد به تا بکنید تغییر میاد مده مدا مدو اینجا تغییر نیومد ولی ببینید مد تو دیگه نمیگیم میگیم مدد تو دیدید تغییر رو مده سیغه اوله ولی اسنادش بدیم به زمیر تو تغییر میاد میشه مدد تو ادغامش به هم خورد ادغامش تو شد ولی در اینا هیچ گونه تغییری رخ ندار حالا بیایید ب اسنادو المزاعفی و الأجوفی الى زمائر الرفل بارزه اسناد کردندی مزاعف و اجوف به زمائر رفع بارز مز... اسناد کردندی مزاعف و اجوف به چه به زمائر؟ از اینجا بخوبی این رو ما حس میکنیم دقت بفرمایید بفهمید و تو التفاحه شقاق تو التفاحه شققنا التفاحه البنات شققنا التفاحه الوالداني شقا التفاحه الاولاد شقو التفاح ضمایر مختلفو ببینید و تغییرهای مختلف رو شققتو شققنا شققنا اینجا فک ادقامه در شقا و شقو ادغامه این بود ماضیش حالا رو روی همینه دقت بفرمایید مزاره رو آورده با امرو تشقی نه در مزاره میبینیم که ادغامه تشقانی تشقونت تشقق نه فقط در تشقق نه میبینیم ادغامی روخ نداده در امر دقت بفرمایید شقی شقا شقو اشقق نه در سه سی اول که آورده با شقی و شقا و شقو ادغامه اما در اشقق نفقه ادغامه حالا به اینا برای مضعف این امسله بودن ماضی و مزاره و امر مضعف آورده بود حالا امسله چه رو بفرمایید امسله ی قلت الحق قلنا الحق البنات قلنا الحق الو الولدانی قالا الحق الاولاد قالو الحق شما اگر دقت فرموده بودید اینجا تغییر اومده بود قلتو قلنا اولش قاله هست قالا, قالا قالو قالت قالتا قلنا اینجا می‌بینیم حذفی انجام گرفته چی انجام گرفته بعدش در قلتو قاف زمه گرفته قلتو الف هم چی شده حذف شده در قلنا هم چونید. در قلنا هم چنین در, در قالا می‌بینیم که داستان جوری دیگه است در قالو می‌بینیم که داستان چیز دیگه است حالا در مضارع ها بیایید تقولون يقول يقولان يقولون تقول تقولان يقولنا تقول تقولون دارينا تغييري ليس جمع مؤنث يقولنا وتقولنا ميبينينك الف تشده حش در يقو تقول يقولنا بیشه یا قول نه، یا قول نه و تقل نه میبینیم که تغییر رخ داده حالا بیایید روی قولو، قول، قولا، قولو در قولو میبینیم که واو وجود داره، اما در قولا که جمع امره مثل مازیه شه، میبینیم سرصفش میگوید قول، قولا، قولو، قولی، قولا، قول نه در عصب میشه قول نه وری واف چی میشه؟ بالتي التقى ساكنين حالا روی قواعد بیাজি اذا اسند الفعل زمير رف دا دا فعل المضاعف الى ضمير رفع المتحرک فک ادغامه زمانی که اسناد داده بشه فعل مضاعف به ضمیر مرفوع متحرک فک ادغام بشه به ضمیر مرفوع متحرک اینجا دقت بفرمایید مددا اینجا ضمیر مرفوع متحرک نیست پس ادغامه مددا ضمیر مرفوع متحرک ما نداریم علفه ولی علف ساکنه مدو وابو داریم ولی ساکنه مدت نداریم مدتا ساکنه مدد نه چون نون حرکت داره فک ادغام شد این قاعده همینو میگه میگه هر اسناد داده شد فعل مضاعف به زمیر مرفوع متحرک فک ادغامه. ادغام ادغامش چی میشه؟ فک میشه متوجه شدید؟ از مدد تا آخر ادغام دیگه نداریم مدد تا مدد تو ما مدد تو مدد تا مدد تو ما مدد تو نه مدد تو مدد نه چون زمیره از اینجا بباد همشون متحرکند قاعده صدلوزه اذا سکن آخر الفعل الاجوفی خود فواسطو میگه زمانی که سکون داده شد آخر فعل اجوف زمانی که سکون داده شد آخر فعل اجوف وسطش حصب میشه مانند چی؟ مانند قول نه مانند دقت بفرمایید قول تو در قول تو آخرین حرف در قول تو چیه؟ لامه، تو که زمیره، جزبه نیست چون آخرش ساکنه واب از وسط یا اون علیفی که بعدن تبدیل به علیف شده چی شده؟ حصد شده در قول نه چون لام ساکنه حصد شده بتوانید شدید در قل نا چون ساکنه حرف لحث شده، اما در قالا و قالو چون لام حرکت داره علف حس نشد. قاعدة سه دو نوزه رو توضیحش بده تا آخر الفیل اجوفی حوس فوسته، زمانی که ساکن دارد دا میشه آخر فعل اجوف وسطش تی میشه. در تقل نه چرا حس شده؟ چون لام ساکنه در قول نه فرقی نمیکنه چه مازی باشه؟ چه مزاره باشه؟ چه امر باشه؟ هرگاه آخرین حرف اجوف ساکن داشت حرف وسطش حرف الله چه واوی باشه چه فرقی نمیکنه یا ای باشه حرف الله چی میشه؟ خاص میشه مثلا در قال هم هست میشه در باع هم هست میشه فرقی نداره چه مازی چه مزاره؟ چه آن؟ قاعده جالبی رو گفت، اما بیایید در اسناد مازی نا... اسناد مازی ناقص به زمایر مرفوع بارس اسناد کردن مازی ناقص به زمایر رف بارس اینجا چه تغییراتی رخ میده؟ امثل رو در بفرمایید خشی تو ربی خشی تو خشینا خشیا خشینا خشو اینا همه ناقصند و همه شون تو این درس همه شون چیان؟ چون در این درس به ما میخواد بیاموزد زمانی که ماضی ناقص به زمائر رفع بارز اسناد شدند چه تغییراتی رو خواهد داد خشیت و ربی خشینا خشیا خشینا خشو در خشو میبینیم که حرف اللح هست شده در خشو اصلش چونه ده خشیو خشی خشیا خشیا خشیو دیگه ولی میبینیم که شده حض شده در امثله بعدی دقت بفرمایید رزی تو به رزینا رزیا رزینا رزو در رزو هم یاتی شده حض شده در امثله گروه بعدی دقت بفرمایید سروتو بجدی به جدی سرونا سروا سرونا سرو, و سرونا سرو باست هم میبینیم واو هست شده این واو جمع مذکره زمیرا واو خودش شده در این سه مثال اگر دقت بفرمیم خشو ردو سرو میبینیم که واو میبینیم که حرف الله چی شده پس قاعده داریم هرگاه ماضی ناقص به واو جمع مذکر اسناد شد حرف الله حسب میشه این قاعده کلیه این قاعده چیه؟ بعداً البته تو قواعد میخونی قاعده خب حالا بیایید توی مثالای بعدی نهاتو نهوتو, نهوتو به تجاربی نهونا نهوا نهونا نهو, نهو, نهو, نهو, نهو, نهو, نهو اینجا هم بینیم که در نهو حذف هست دعوت اخی دعونا دعوا دعونا, دعونا, دعونا دعوه. علوت بأدب. علونا علو. علونا علو. مضيت في طريقي مضينا مضيا مضينا, مضينا مضوا. بيادروا قواعد. كيف تلق قواعد؟ إن أمسل رتزي بدين بهترى. قاعدة السدبيست إذا أصل الماضي الناقص إلى واب الجماع. زمانی که اسناد داده بشه مازی ناقص به واو جماعت یعنی یعنی ضمیر جمع مزکر بهش بچسبه حذف حرف علت حرف الی حس میشه و بقيه الفتحه قبل و وفات قبل از باقی میمانه اذا کان المحذوف الفا زمانی که اون حرف عله که حس شده باشه الفی بوده باشد و ما قبل ها لم يكن الیفا و اگر ما قف ما قبل و ما قبل اون حرفت حست شده اگر الف نباشه اون موقع زمه میگیره حالا دقت بفرمایید در خشو رضو سرو نهو در اینا ما قبل حرف حس شده چی بوده؟ باقیت الفتح, الفتح قبل الوام اذا کان المحذوف الیفا باقی میمونه فتح قبل از وام زمانی که اونی که شده الیف باشه در خشو رزو سرو و نهو حرف حصده الیف نیست اگر الیف میبود میشد خشو ولی الیف نیست یا بوده خشیو چی بوده؟ پس میبینیم زمه گرفته خشو وله در دعو علو مبو قضو استدعو اعتلو حرفة هسته در دعو وابود دعوة كمشه دعا دعو دعوة دعو پس انجا حرفة هسته چه هست الف هست وضم ما قبلها ما قبلها اذا لم يكن و وزممی میگیره ما قبل این حرف هست شده زمانی که الیف نباشه در خشو رضو سرو و نهو الیف نبوده اما در دعو علو مبو قبا استدعو و اعتلو حرف هست شده چه الیف است این یک قاعده بیاید قاعده سدو بسی کم اذا كان آخر الماضی الناقص یا زمانی که آخر ماضی ناقص یا باشد ا واون یا یا باشد او اسناد الی غیر الواو من الذمائر البارزه یا و داد اسناد داده بشه به غیر از واو به دیگه ای اسناد داده بشه به ضمیری که فانه لا یحدث فيه تغییر تغییری درش رخ نمیده زمانی که آخر ماضی ناقص یا باشه مانند خشیه یا واف باشه مانند سروه رزیه خشیه سروه دقت داشته باشید سه سال اولی رو حواستون اینجا هست؟ زمانی که آخر مازی ناقص یا باشه مانند خشیه، رزیه حواستون هست؟ یا یا آخرش واف باشه مانند سروه و نهوا مانند سروه و چی؟ نهوه و اصنده الى غیر الواف میل الزمائر البارزه و اسناد داده بشه بغیر از واف یعنی اسناد باشه اما اون زمیر واف؟ نباشید فانه لا یحدث فيه تغییر درش تغییری روح شما اگر دقت بفرمایید در خشیتو رزیتو سروتو نهوتو فقط در یک سیغه تغییر اومده بود اون جمع مذکر بود فقط چون در جمع مذکر اسناد داده شده بود به واو در سیغه دقیق تغییر نمیاد حالا شما دقت کنید من اینو صرف میکنم رزیه رو صرف میکنم رزیه رزیه رزو اینجا حس شد ولی در روز قبل دو تا قبلی صرف نشد از اینجا به بعد هم حس نمیشه تو واو لیست دیگه از اینجا به بعد رزی رزیت رزیتا رزینا رزیتا رزیتمار رزیتم رزیتی رزیتمار رزیتون, رزیتون رزیتو رزینا هیچ تغییری رخ فقط اونجای تغییر رخ داد که مسند به چی بود به واو بود پس این قاعده سنویسیک اینو میگه میگه زمانی که آخر ماضی ناقص یا بود یا واو بود حالا چی رضیه چی سروه سروه مثل رضیه و اسناد شده بود به غیر از واو تغییر روخ در واو تغییر رخ میده در واو چه آخرین حرف واو باشه چی یا باشه چی علف باشه حرف عله چی میشه زمانی که مسند به با واو باشه حس میشه إن قائده سدو بسيك أما قائده سدو بسيك إذا كان آخر الماضي ناقص أليفاً زماني آخر الماضي ناقص أليف باشي معنان ده دعاه معنان ده چه؟ دعاه معباه قضاء استدعاء اعتلاء معنان ده آخر و إلى غير الوافع من الزمائر الرفع البارزة و مصند بشه به غیر از واف چون به واف اگر مصند بشه مطلقا حرف الله هست میشه چی آخرش واف باشه چیا باشه چی علف ما بحثمون الان روی واف نیست روی غیر وافه اگر وافی یا یای یا بود مصند به واف میشد اگر وافی یا یای یا می یا بودین ناقص مصند به واف میشد حرف الله کی میشد اگر واوی و می بود مسند به غیر یامی شد تغییری رخ نمیداد حالا ببینیم اگر علیفی بود و مسند به غیر از واف شد چون به واف که کلا تغییر رخ میده اگر علیفی بود و مسند به غیر از واف شد ببینیم چی میشه میگه زمانی که آخر مازی ناقص علیف بود و مسند به غیر از واف شد از زمائر مرفوع بارزی خاب ينجذب كاتكولي، فإن كان ثلاثياً ردت الألف إلى أصلها. أجرُ الفيل سلاسيبود يعني سحرف دشت، منزولة الثلاثية يعني سحرف داشت مثل دعاء على ومضى وقضى. لقد دشت واشيت، مثل دعاء على مبا و قبا ردت الالف و الى اصلها الف به اصلش برگردانده میشه اینجا دقت کنید دعا حواستونو اینجا کنید بهتره دعا میگه دعا ناقصیه که آخرش الفه میگه اگر مصند شد به غیر از واف الف به اصلش برمیگرده این دعا اصلش از دعوا بوده پس ما در سیره بعدی که زمیر علفه داریم به با اصلش برمیگردیم میشه دعا دعوا دیدید الفو به اصلش کار کردیم مبا مبایا قبا قبایا علفه به چکار میکنیم به با اصلش برمیگردیم همانطور که در, در دعوتو علوتو مبضای تو و قبضای تو حرف علی به اصلش برگردان شده دعا حسیقه اول ولی میبینیم که اینجا شده دعوتو و تو به واب برگردانده شده چون اصلش واب بوده علا بوده شده علا و تو بوده شده مبضای تو بیا برگردانده شده قبضا بوده شده چی؟ قبضای تو پس هرگاه آخر ماضی ناقص علف باشه و مسند به غیر از واغ بشه یعنی مسند به تو بشه مسند به تا تو ما تم تی تو ما تو نشه ها مسند به ذویر الف مصنا بشه مسند به اینا بشه میگه به اصلش برگردانده میشه اگر سه حرف داشته باشه اگر چند حرف داشته باشه مانند دعاو علاو مباو قضا اینو چند تا حرف داره سه تا و انزاد علا ثلاثه اما اگر بیش از سه حرف داشته بود مانند استدعا و اعتلا مانند استدعا و اعتلا قولیبت الالف و یا ان اینجا دیگه الف مطلقا تبدیل بیا میشه اصل و نداریم تبدیل به چی میشه؟ استدعا استدعا این سیغه اوله اینجا مصنده به زمینی نیست در سیغه دوم این الف تبدیل بیا میشه است است ها زمانی که مسده به بشه خب قبلا خودی مطلقا حرف میشه یه فیل سرف ده ها د چون این سهحیه و برگشت. چون این حرفی واف چی کار شد؟ دعت در مفرد معنیس که اینجا قاعدش رو ناآورده بود خودم براتون توضیح بدم در مفرد معنیس اگر ما قبلش فتحه بود بازم حرف علتی میشه حس میده اگر فتحه نبود حسنه میشه مثلا به شما ببینید دعا دعوا دعا دعت ولی در خشیت حسنه میشه خشیا خشیا خشیو چی میشه؟ خشیا، خشیا، خشو، خشیت. اینجا یه حس نمیشه، ولی در دعاء هست میشه. دعاء، دعوا، دعو، دعت. چون در خشیت ما قبل حرف عله کسره داره. من مفرد مؤنثه الان براتون دارم توضیح میدم. ولی در دعاء، دعوا، دعت فتحه داره. چه داره؟ خب این قاعده رو اینجا در این درس نورد که اینو توضیح دادم. به خاطر اینکه کامل سرش کنم تمام قواعد تو سرتون باشه. حالا دقت بکنید. دعا جنس حرفیه مسند به غیر از واف که شد واو به با اصلش برمیگرده چی الف به با اصلش برمیگرده دعا الف به با چش برمیگرده به الف به اصلش که واب هست دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا داوت دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتون دعوتو دعونه اگر یایی باشه باسن به اصلش برمیگرده مانند مبا، مبا یا، مباو مبات، مبتا مبت مبایی نه مبایی تمنده قما الى آخر این سه حرفیه گفته بود اگر سه حرفی مصند به غیر از واف بشه علف تبدیل به چی میشه؟ به اصلش برگردانده میشه مباو دعا رو صرف کردیم دیدیم که علف دعا و الیف مغضا اصل اصلشون برگشت قول اگر غیر سه حرفی باشه اون موقع تبدیل بیا میشه استدعا, استدعا بیش از سه حرف داره دیگه استدعا بیش از سه حرف داره سته این در سیگاه بعدی الف تبدیل بیا میشه استدعا استدعا استدعو استدعایت استدعایتا استد عین استدعیت استدعیتما استدعیتم الى آخر بهمید که اینا شدن از قواعد این درس اما آخرین درسی که باز هم اسناد الزمیر هست دقت بفرمایید اصناد المضارعی والامری الناقصینی اسناد کردن مزارع و امر ناقص مزارع ناقص و امر ناقص اسناد کردن مزارع و امر ناقص الى زمائر رفع البارزه بزمیرهای رفع بارز انتی تسعینا فی الخیر امرش میشه اسعی المخلصونه یسعونه فی الخیر امرش میشه اسعو الوالداني یسعیانی فی الخیر اسعیا الفتیاتو یسعینا فی الخیری اسعینا این امرشه سه گروه هزم سل رو آورده انتی تبدین سروره عبدی امر تبدینه میشه عبدی الناجحون یبدون سروره امر یبدونه میشه عبدو الو... الولدانی یبدیانی السروره عبدیان الفتیاتو یبدین السروره عبدینا انتی تدعین الی الامل ادعی المخلصون يدعون إلى الأمل أمر يدعون, يدعون. مشي أدعو الولداني يدعواني إلى الأمل أدعو أدعو الفتيات يدعون إلى الأمل أدعو أمرش حالا بهايد روي قوائد كالروي قوائد دوباره من عم سلو ربراتون توزيح بدم قائده سدو كتاب المضارع ناقص الذي آخره ألف وياه أو أو وواه مضارع ناقصي كآخرش ألف باشد یا یا باشد یا واف ببینید چند قسم از امسال را آورده بود؟ سه قسم. برای هر قسم چهار مثال. تصعینا، یسعونا، یسعیانی، یسعینا. این قسم اول. تبدینا، یبدونا، یبدیانی، یبدینا. این قسم دوم. تدعینا، یدعونا، یدعوانی، یدعونا. این قسم سوم. چرا به نظر شما سر قسم آورده بود به خاطر این که مزاره ناقص یا آخرش علفه یا یا یا واف در تسعینه آخرش علفه تسعاه در تبدینه آخرش یا یوبدی اولین سیغشو من دارم میگم در تدینه تد هم وافه اولین سیغش یدعو او هست چه هست؟ یدعو پس تسعینه اولین سیغش یسعه هست که علفه تبدی اولین سیغش یبدی هست که یاه تدعی اولین سیغش یدو هست که آخرش چیه وابه حالا بید رو قائده میگه المزاره و ناقش آخره الف او یا یاون او وابون مزاره ناقشی که آخرش الف یا یا یا واب باشه کسه گروه هست امثل رو آورده اذا اصنده الى یا المخاطبه میگه زمانی که مسند بیای مخاطب باشند یعنی تصاعینه این مصلحه به چی هست؟ مصلحه به یا مخاطب است. تبدیله و تدعینه این هر شتاب مصلحه به چی هستند؟ بیای بی مخاطب. او وابز یه زمانی که مصلحه به واب جماعت باشن مانند یه سعونه یابدونه و یادعوله حذف حرف الإلة حرف الإلة سلحس مشه معنى أنه تسعين يسعون تبدينه يبدون تدعينه يدعونه حرف الإلة زينة شدي حاسف شدي وبقي فتح ما قبله إذا كان حرف الإلة ألفا و باقی میمونه ما قبلش مفتوح زمانی که حرف الله حس شده علیفی بوده باشه حالا اینجا دقت کنید که چطوری حس شده بینید یسعا اولین سیغه تسعینه هست یسعا, یسعا یعنی یسعا یونه. یسعا یونه ولی حرف الله حس میشه؟ میشه یسعونه میشه چی؟ مانند آل مخلصونه این همونه. دیدید کار فیل هست شده؟ چون مضافه به، چی مسنده به، همچون همچنین اگر مسنده بیای مخاطب باشه، مانند یه سعای سعیانی، سعایونه تسع تسعیانی، سعینه تسع تسعیانی، تسعایونه تسعینه. تسع تسع در عوض بوده تسع یینه. یا چی شده؟ هست شده پس قاعده اول میگه مزاره ناقصی که آخرش الف یا یا یا واب باشه زمانی که مصند بیای مخاطب باشه مانند تسعینا تبدینا و تداینا حرف فعله میشه؟ هست میشه همچنین زمانی که مصند به واب جمع باشه مانند یسعونه یبدونه و یدعونه اینجا هم واب هست شده یدعو، یدعوانی در اصل میشه یدعوونه که واب چی میشه؟ هست میشه فرقی نداره چه واوی باشه چی چه یایی چه الفی؟ هیچ فرقی مثلا یایی بانند یرمی یرمیانی یرمیونه ولی یا حس میشه میشه یرمونه میشه چی؟ یرمونه این یبدینه همینجوریه یبدی یبدیانی یبدیونه ولی یا چی میشه؟ حس میشه میشه یبدونه پس هرگاه فعل مزاره ناقص مسند به واو یا یا بشه زمیر واو یا زمیره یا بشه حرف الیه آخرش چی میشه؟ حث میشه. اگر آخرش الف بوده باشه فتحه میگیره، اگر نه فتحه نمیگیره. مثلا شما در یخشا یخشا یخشا, یخشا، یعنی یخشاونا ببینید یخشاون الف فتحه میگیره، نه؟ ام بله. در تسعا هم يس ايس یعنی یسعاونہ و تسعینہ اما در تبدینہ نه دیگه نمیگیم تبدینہ چون آخرین این یایه یبدی هست یوبدی یوبدیانی یبدونا تبدینہ بله در یدعو هم آخرش واوی بوده پس فتح نمیگیره میشه تدعین یدعولا ولی اگر الفی باشه فتح میگیره میگیره مانند تسعینہ و یسعولا اما در تبدینه یبدونه و تدعینه و یدعونه فته نداره فته نداره بیایید روی قاعده سر بسچار المزاره و لذی آخره و مزاره ناقصی که آخرش علف باشه مزاره ناقصی که آخرش چه باشه مانند یسعه یخ شاه ها؟ آخرش الف باشه اذا از نده الى الیف, الیف زمانی که مسند به الیف مصنع بشه او نون النسوه یا مسند به نون جمع موننس باشه قول ابت یا ان الیف تبدیل بیا بشه اینجا دقت بفرمایید من براتون بگویم گفته بود اون مزارهی که آخرش الیف باشه مانند یسعه مانند چی؟ هرگاه مسند به الیف مصنعه یا نون جمع مؤنث بشه علف تبدیل بیا میشه بشه یسعا یسعا یانی علف تبدیل به چی شد به یا شد یس عینا یسعا یسایانی یساونا تسات تسایانی یس عینا تبدیل به چی شد بیا شد چون هرگاه مسند به علف بشه یا مسلله بنون بشه اون موقع الف تبدیل به چی میشه تبدیل به یا میشه مانند مثال های خودمون الولدانی ولدانی یسعانی الفتیاتو یسعینا این مثالی هست که آورده است اما قاعده 1250 کتاب المضارع الناقص الذي اخره یا مضارع ناقصی که آخرش یا است مانند یوبدی اواف او یا آخرش واف هست مانند یادؤ اذا اصنه الى الف الاسنه زمانی که مصند به الف مصنه بشه او نون یا نون مصنه لم احدث فیه تغییر در این تغییری نمیاد مانند این مثال رو دقت کنید الولدانی یبدیانی یا سر جایشه یبدی یبدیانی یبدونه دیدید که اینجا تغییری رخ نداده در جمع معنیس هم میشه یبدی نه همچنین بابی یدعوانه و یدعوانه تغییری درش رخ نداد اینا مهمترین قوائدی بودند که اگر شما اینا رو بیاموزید واقعا در متلات دیگه شما شاهکار کرده اید